<الحمد, الحمد لله رب العالمين. الله علیه الله الله متعال جميع المشتردين. ورحم نا رحمتك يا رحم الراحمين. حاجه به روایاتی بود که در مسادر اصحاب ما به اصطلاح جایی شده و کردیم از کتاب جامع احادیس اون مقدار از روایاتی رو میخونیم که در کتاب وسائل به اصطلاح نیامده بود و توضیحش رو از کردیم که در باب ما به اصطلاح چند عنوان داریم که در خود کتاب مکاسب شیخ در قسم دوم بود، سوم بود، یک مسئلهش آورده، این یک مسئلهش قسم چهارم آورده، چهارم آورده. دو تا مسئلهش قرار نوعا شد البته اول نگاه شده. شده دو تا مسئله رو توی نوع انواع سابق آورده، یکی رو اینجا آورده. اون مسئله ای که در به اصلاح سابق آورده که خ و فروش مغنیه بود این یک عنوانه به نظر هر دو رو پس سوم آورد یا دو مثلیم اول دو ن بود. یکی خز فروش مغنیه بود، یکی خ و فروش آلات غار بود این دو تا یکی هم خود غنا بود که اینجا آورده این بحثی که در اینجا در نوع در حرف غین غینار و مرحوم در اینجا بود. و توضیحاتشه ارز کرده که در خود وسائلان چند با قرار داده همونطور البته اضافه بر خلد و فروش اصلا بابیان به نام عجر مهمیه پولی کادم میده به مهمیه اضافه بر خود غینار استماع غینار اصلا در وسایل بابی رو به با عنوان استماع غینار ایره شده بود خود اون قرار داده. علا یا حالا ذکرم در باب ما غنا، عناوین مختلف و مسائل مختلفی داریم. حتی می شیخ در همین کتاب مکاسب محرمه در دو جا مسائلش آورده. سه تا مسئله ارزش آورده در جای مختلف. بله این روایتیه که دیروز رسیدیم ظاهرا روز خطب راوندی بود لا یهلو بی المغنیات و لا و سمنه هونه حرام در این جند 22ی که داریم از جامل احادیز چاپ جلی صفحه 243 یعنی باب 21 پیش از اول مایو تسن. این مطلب اجمالا به رسول الله نسبت داده شده هست در روایات اهل سنت هم هست اما به یک مزارش بعد میکنه از اوالی هم نهارد کرده این مطلب اجمالا درست در کتاب فقیصه علی رجم علی ابن الحسیح اجاریت شراعه جاریته لحاظ صوتون بله این در این دواره اشکال نداره ما علیک لوشتره ایتها فذکره هم کل جننه. این ما تو وسائل هم کوندیم این دواره ارسنه مرسل منفرله مرهوم سروق آورده در هیچ مستر دیگه هم فعلا ما پیدا نکردیم این دوباره صورت در مسادر اما خب صدوق داره و هرها معلومش در مستری بوده و محل استناد مرحوم سال وسائل هم شده چون سال وسائل عنوان بابش هست به همین حساب جمهوره حاضر جمهوره حاضرم عنوان باب مثل وسائل گرفت. تحریم و بیعه ها و شرائه ها شرائه مغنیه ادلااللہ من لا یامورها بلغناء بلیم نه آها این دلیل صبر سایلمی بیا از که من به انصافن از که قواعد این مطلب درست نیست خیلی پروش مغناهی هر به است اینکه من اشکون از غناء جایز نیست بله بلی خیلی پروش مغناهی برای مدتی کنیز عادی اشکال نداره چون از که من گفتم خیلی زیاده یعنی صحبت مثلا یک مبلغ کمی نیست این طور نیست که مثلا فرصی کم باشه این قواهت هم داره که یبی آهاز سازجه به عنوان بله سازج یعنی بدون سفت غنان پس این روایت الان نمیشه قبول کرد ما روایتی که داریم در باب و پروش مقنیه که خلاف مشهوری که اینه دیگه روایت روایه عبدالله نه حسن دینا وریز که میگه اشتری المغرانیه قبل جاریه تو حسن و و هر رزق لاسه وضلاه علی اشتره و به این روایه هم سعندن ضعیف اشکال داره خود اون وری و ما نمیشناسیم احتمال میدیم که سنی بوده و شواهد خیلی واضح در متن سوالش هست که ایشون کارش خدوفوش بردعان بوده نخاص میگفم. شخص محفظی بود که کار خیلی بود این دوست روایت رو نمیشه قبول کرد این راجب به این قسم در حدیث باب بیستو یک که دیروزم باز خوندیم و بعضی از احادیثش رو دیروز متعرض شدیم دیروز اینجا رو میمیداره از روایت به اصطلاح باب 21 یک هم خوندیم و بعضی هاش هم را به تمثیل اعمال بود تا اینجا هم سنم در اینجا به خوندیم در اینجا داره اندائم انجعفر ابن محمد این الان در مسادر ما نیست از کلم چه دارن شو 21 از واقعه 21 هنج عبرم محمد قال من روی عبی رزوان الله علیه و هنه غلامون سقیر و قد وقفت علا زمارین و تبالین و لعابین از سره خیلی بعیده اهل بده از کچیگی کن اهل لعبوینا ها نبوده فی اخد قیدی و قال نیمور من منشمت به آدم بله این در یک حدیث دیگرم گذاشت در اینجا اون مضمون هست در روایات ما اما اینکه امام امام علیه السلام خودشون کارو انجام داده باشن در روایات ما نیست چون در روایات ما هست که اصولا وقتی که خابی کشته شد و علموزه شهید شد ابلیس این غنار را انداخت به عنوان شماعتت با آدم یا شماعتت با آدم این ما خرجم در جمعه این هم ما داشتیم نه از کتاب اویون اخوار رضا هم سابقا خوندیم از کتاب از کتاب خسال به نظر این حدیث رو در کتاب چیز نیورده بود اما بعد نیست سوئله ابو عبدالله این صفل سندر ضعیفه آل من یک الخمر و یک رو با تنبور این صفل این انسان پس این یک احتمال داره یک احتمال داره که به اصطلاح مو... چیزی باشه مراد یه بحثی باشه که بعدها احرسنت مطرح کردن که این شما مطرح میکنی با اون که گفتن بعضی از افراد جنا حرام نیستن لیکن خلاف مروت هستن سفله انسان است. یعنی اگر مثلا خود انسان عادیه شخص تو توسیابون راه بره لطفاً هارون را که تنبور بزنه این خلاف مروکه و تسخط و شهادتو به این جهت نه به جهت اون جهتی که شده از کتاب عمالی ابن شیخ با اون سندی که الان من نمیخوام وارد بحثش بشم کل ما اعلی ها ذکر الله و من اليسر ان خواهد آمد این مطلب یه روایت دیگه هم از لب نقل معروضه که اون هم از محله به اصطلاح بعد نیست اما ما شواهدی الان نداریم اون وقت یه مقدار زیادی ایشون اشارات داره و خوبه بعضش گذاشته بعضش هم خواهدانه. از روایاتی که به اصطلاح ایشون باز نر نکرد یکی سری که میگه ما در این خونه مغممی نازل شدیم از امام کونو کرامن از امام رو به لغ این ما داشتیم اینجا از دعای نار کردن بله باز از آن نار که اون حدیثی که من توی میرفتن و گوش می‌کردم امام فرمود این کار نکنیم نفسن و البسر از سخورزان نار کردیم ما داشتیم اون بحث اینجا از تفسیر عیاشم هم نار کرده که ما داشتیم این چیزی بود که گذشت به روایات با یک روایات دیگه هم بود که از دعایم اینجا نرلی کرده که که در ذیلشان هست که میگه من رفتم اونجا و مدرگی من برد جاریه بود که بنامی کند و من گوش کردم وی حق اما خفت امرالله حنیتیک و انت علا کل حال این زارن امرالله مراد نهو مجلسون لایم ظور اهله غنا اخ و خلق الله و غنا اشر و ما خللق الله داریم این رو کشادبدیان و غنایور سکتر و نفاق این با هم داریم یعنی این به اصطلاح وارد شد این مجموعه روایاتی بود که در اینجا از کوب به اصطلاح معروف، و غیر معرووط از ها خونده شده خب رموانت اصحاب که زیاد یه جنبندی کلی بر رموانت بکنید چه اصحاب ما و چه اصحاب اسمایلی ها من در من تو کتب زیدیه فعلا ندیدم همه کتب زیدیه نگاه نکردم در کتب زیدیه ندیدم اما در کتب اصحاب ما زیاده دید. در این مجموعه‌ای که اطفاً مرموع های برزیه این تو در این کتاب که جمع شده این دیگه زمان های برزیه نبوده به حسب شماره ای که ایشون داده سبه بیست تا روایت در این مجموعه نام کرده در این مجموعه اونی که معارضه مقدار معارضش در این مجموعه یکی همین روایت بینوری بود در خند و پروش جاریه یکی روایتی بود که از سرجات سانه ما از ایک تا. که این همین امروز از خیلی سندشون زید یکی روایتی بود که سابقا این که حضرت سجاد خودشون جاریهی داشتن که برایشون اشعار ظهر میخونده این هم مرسل و سنده و از انفرادات صدوق هیچ شاهدی هم نداره اینجا تا اینجا شد ما معارضشه بگیم یکی روایاتی بود که منحسرن مرحوم شیخ توسی درم کرده بود از طریق واقفیه از کتاب تو سلط و انعجر المهمیت و ناهف و کره هم که میگه اگر اجر مکروه باشه جائزه باشه پس خود جنا جائزه به ملازمه. ما که عرض کردیم می از طریق واقفیه است احتمال هم دادیم واقفیه شاید در میان فرقه قائل به کراحت جنا بودن مثل عده زیاد از اهل سنت فکر می‌کنید این احتمال دادیم. اگرچه نشون نرم مدار برای واقفیه بر ما نقل نشده انصافش این احتمال هست که واقعیه این رواج بوده. این چهار حدیث. این حدیث مثلا بهترین حدیثی است که در کتاب به تحلیل آمده و سال در سال آن کرد توضیح کرده. وقتی کره او در ناهن نظر مغنیه و ما توضیحاتش دادیم که سالگان آن کرده. این شود چهار حدیث. یه حدیث دیگری از ابو بصری که متون مختلفی داشت اون حدیث ابو بصری. لونی که غنای در احراس اشکال نداره و یک متنش اینجوری بود اللتی از خلا علیه هر رجال حرام و اللتی تزوخ و این متن رو هم واقعی نهر کرده در کافی هست و من همیشه اعرض کردم مستر مترسطه در تمام این نقل هایی نهره سه تا داره همیزه ها تایو در هر سه در اون رواقی که از سماعه بود مصدر متوسرم کتب حسین سایده، منحصران ایشون دهند. و توی ثناشون هم بازش واقعیه اون روایت یک متن دیگه داره. اون متن اینجوریه: الکی تزف الارائس لیست بالتی اتخلالها یعنی به شرط، به شرطی که رجال داخل نشن. این معنا رو در کتاب دعائم آورده. دعائم آورده که لا بدر کذو فل عرائس ادالنیت خود علیه الرضا و لم تتكلم بالباطل و لم بالباطل این لم تغن بالباطل در روایت ما نیامده بله در یک متنی از کتاب علی بن مالم ما این آمده چطور بالباطل این توجیهی است که دائم الاسلام که اسماعیلی چیچ امامی است به اصطلاح ما برای این حدیث کرده این این مطلب یعنی لا ید خلالیه رجال ولن تو به الواسط به این در نهایی شیخ توسی آمده این روزه اجایره وفات شیخ توسی ست سال بعد از وفات سال ده آره سال ده هست که این چیزی حوضه 20 سال قبل از شیخ صدوقه سی سال بعد از شیخ کلینیه ما بینه ماست و در مصر هم بوده و قطعا هم با حوزه های ما ارتباطی نداره یعنی هیچ ذکر نشده که از مشایخ ما حدیث نارد کرده باشه که در بحث دعایه خیلی بحث چند سال شده یه توضیح ارز کردیم که احتمالا صاحب دعایه مقیده به شروط تحدیث نبوده چون نگفته کسی در اضافه رو چون شواهد ما نشون میده که مثلا ایشون یک معاصلی در مصر داشته محمد بن محمد بن محمد روز نمیگه حدثنی محمد بن میگه فیلم ها رئیس و رئیس میره کتاب محمد بن عشان زواهدش نشون میده که ایشون ملتزمه به قواهد تحدیس نبوده یعنی به اصطلاح موزده مثل ماه بوده هر کی دیده و جاده غیر الله خب ایشون از یک کسی که در مصر معاصر ایشان هست زنده هست هم با توی حد دست هم این قاعدش اینطور دیگه حالی قدامتای خدش اینه باقونی که معاصر شده حد دست حتا هم مصادر ما در اختیار ایشان بوده یعنی کتب حسینی سعید و کتب ابن علی اصلا معروف اینم قطعی است سکونی و اینم قطعی است که کتب ما در اختیار ایشان بوده وکن احتمال بسیار قوی تمام اینا به نظر نجاده بوده چون اصلا ایشون مرتضر نبوده به تهذیث تو خط تهذیث و قواعد حدیث نبوده همون را اینکه الان ما پیگیری کنیم میتونم در 1700 سال رفت ایشون پیدا کنیم این هم راجبی میشد پس مجموعه روایاتی که ما در باب معارض داریم به ده تا نمیرسته هم همین درست که به شما گفتیم این کل ما آرزش نه همین درست که این روایات هم در احواب مختلفه یکی قناه یکی سماع و قناه یکی اجر و مبنیه و مقرمیه یکی شراع آلات قناه و دهی آلات قناه انواع مختلف اون چه که در روایات ماست همش به اتفاق بر حرمت و نفیه این در همین حرفش دخته ای که عرض کردیم که چون بخواستم شرح حقایت شیخم در مقاصد باشه شیخم به با عنوان تعیید مطالب صاحب کفایی کفایت کفایت و لحفا و تعیید فیض ساشانی اینا رو اردود استقصال ما بیش از چه کل روایاتی که میشد و او تمثل کرد در حلیبیت غنا اینا ب و انصافاً این روایات در مقابل اون روایت کسیره فراوان اصلاً اصلا تا به نداره به هیچ وجه نبوده. این به لحاظ روایت ما چون این مسئله یک مسئله بوده که محل کلام بوده و مسئله ارز کردن چون در مدینه خصوص و احتمال دارم که روایت امام سجال هم این باشه مخصوصاً مدینه من شواهدش ارز کردن جایی بوده که خیلی جنارارش بوده مدینه پیغنبه واقعا یکی از اجایبه که قناب نحوه شدیدی در اونیا رواج داشته ارز کنم که برای اصل این مطلب ما یه مقداری هم آیات و هم روایات اول روایات رو متعرض میشیم به مناسبتی بعدی شمید سلال تحریز نهایی تا به حاضر شیعه به نظر ما مطلب تمام. یکی از آیاتی که زیاد در روایات ما ذکر شده و انسان‌ها هم اهل سنت بیشترین قسمت رو تو این آیه آوردن این آیه واوره در سوره لقمان که جزء آیات مکیه است سوره لغمان جزء آیات مکیه است بسم الله الرحمن الرحیم الهنا من تلك آیات و کتاب الحکیم خیلی لطیفه که زوائد اول سوره لغمان با زواهر اول سوری بغره که مدنی است من اوائل ما نظرت المدینه سوری بغره است که خیلی با هم نزدیکی دارن این آن اگر با هم تحقیق تاریخی بکنن بلخصوص یک کسی از مشرکین که میاد برای ایام حج و پیمنبرم به اومال آباد داشتن ایشون ادعا میکرد مجموعه اوراقی داره که مواعظ لغمان داره شد در سیره است در طور سیره نگاه ب و اون پیغمبر میگفته که تو که قران همین مثل همین کتابی است که من دارم از لغمان احتمال داره این سوره مونده که در مکه ناظر شده باشه روی این جهث البته این توضیح اینجا نداده در این که من از کتاب درل منصور سیوتی من جلد 3 صفحه 158 که آیات رو برده به بعد حالا یه حاله یکی از کتابهایی که موجود بوده نوشتار بوده در اون وقت نوشتار هم خیلی کم بوده شخصی بودم و اسمش یادم وقت نوشتن که اوراقی داشته از لغمان به نظرم که سجل به نظرم تحبیل سجلی از لغمان داشته و بلا و رسول الله هم میگه که تو نحرم میکنی مثل همین کتاب منی بر من یادم به هر حال شاید مثلا نکتی نزول آیه آیه سوری لغمان روی اینجا داشته الف لو امين الكتاب الحكيم خدر ورحمه للمحسنين الهانقال ايه 4 و 3 چون شما نذاشته و من الناس من لح لحل حدیث یک شخصی است که ادعا شده این شخص که صد خاله پیغمبر ببینید مهمه مهمی در سیرت که احتیاج به بررسی داره الان شو دی من بخوام تاریخ بشن این اسمش نظره نه حارث ادعا شده این خاله پیغمبر این مثل پدرش چون پدرش هارس ابنه کلده بهروفترین و سرچناسترین چهره یه طبیب در دنیا عرب در زمان پیغمبر ایشونه هارس ابنه کلده که ساکن تائف هم بود و طبیب درجیه که دیگه ایشون در همین به اصلاح جندی شاپور احواز به اصلاح درس خونده درست تو ایران خونده اما برگشته به مکه و به اصلاح معروف به طبیب العرب همین حارسه بن کعلده پسری داره میگه این حارسه بن کعلده خواهر از خدیجه زنش بوده پسری داره درو نل الحارث این هم مثل پدرش دنبال همین قزایای علمی بوده یعنی خاندان خاندان علمی بوده این ظاهرا با ایران هم ارتباط داشته من قرار هست که خصوصا عرب جاهلی م... مکه و مدینه با ایران ارتباط نداشتند توشون یمن و شام بوده این شام ظاهران داشته یک مقداری هم از کتاب های ایرانی به عربی ترجمه کرده شکل داشته ایرانی هم مقداری هم نقاشی داشتن کتاب هایی که نقاشی بوده کتاب های رستم و اسفندیار نوشتن نمشتن تصریح کردن رستم و اسفندیار رو این چرخ می برده اونجا خودش هم شاید مثلا تبنیت پدرش خونده بوده این یکی از سرشناسترین چهره ها به عنوان معارض با رسول الله هر کاری که مثلا همین سوره لقمان و نصایح لقمان اون میگفته به مردم که اینا رو نشوخین من این کتابایی دارم روسم و اساندیار این قصه هاشون خیلی لطیف و جریاناتشون مثلا تو شجاعت و شاهامت و ایناست این چیزاییه که ایشون میگن به درد نمیخوره الان اینا یه بخش تاریخی داره قسمتایی داره که مشکلاتی داره حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم من فقط اشاره عابره بکنم حالا اصلی مطلب درسته. درست نیست بعد از همین قد اساطی دانشگاه تهان ماله صابر بحثای راجعی این کردن بله نمشتن نه این معنی درست باشه به هر حال و همین اما هم در جنگ بعد شرکت میکنه و اثیر میشه پیغامر دستان که گردنشو بزن که هم بحث داره از کردم من حالا فیلم بحث تاریخیش نمیشم چون یه لطیفی هم داره اما و ما دیارا به نم ولی اجازه ایمان خلیل بن رضی الله عنهما فی قوله ان الناس ان یشتری له یعنی باطل الحديث له الحديث رو باطل این رد به جنا نداره یعنی مخالفی که باطل کارو به جنا و خوندن و خوانندگی و مطربی ردی نداره و هو بن نضر بن حارس ابن الغمی جلوس معروف حارس مکرد اصل ایشون الغمی نوشته این دیگری اشتر احادیث العجر و سنی اهم فی کیما در روزگاران باستان چی داشته مثلا کتاب شاهنامه فردوسی و کان یک توای کتب من الهیره و شام پس کردم از هیره و شام یعنی هیره اون وقتی ایران بود دیگه. هیره من کوفه دیگه ما به اصطلاح جنوب مدائن میشد مدائن که پایتخت بود و کرد بو فی القران فاعرض ان ففلم ف... یؤمن ده و این البته این یکی یکی دیگه هم داره که این شخص اضافه بر این مسئله اضافه بر اینکه که کتاب های و استراندی ها رو تاریخ ایرانی ها رو داشته مقداری هم جاریه و کمیز میخریده برای اینکه که افراد رو گول بزنه گفته شما این که مسلمان شدن برشون رقاصی بکنیم چراب بشون میداد و این قضایی دو... بگید اگه پیمه هم برشون قصه نهار قصه اگه فیرنذر گفته از شلون خب ما الان نقري مثلا این یشتری له حدیث شاید به این جهت تغییر له حدیث شده که هم شامل کتب باطل بشه و هم شامل همون خانندگی و روازندگی فی تاسن دوست داشتند اینا کار شاخمون نیست درسته اصلا در بعضی از کتابهای اهل سنت حالا اینجا الان من نگاه بکنم اصلا تصریح میکنه که رستم به اصل خودش ناتونده این نظرمه حاله بله کتاب های رستان اسم بوده رستم و اسندیار اسم, اسم رستم و اسندیار بوده حالا هست و احاغمه نبیدون الان اینجا آیا ایشون نقل کرده در در رول منصور یا نه. من چون بعد میخواهم به عبادت که میناباریم از کتاب کرتویی بکنم اونشون داره در کتاب کرتویی داره تصفیح داره تصفیح به رستان و اسندیار داره نه اینکه حالا بله. این این آیه مسلمن جز مشهورترین ترین آیاتی بود که قطعا بعدها بهش که به باب غنا شد این حبارت من دقت بکنید. یعنی احل سنت اشکالشون اینه که حدیث رسول الله در که با آیه در باب غنا ثابت نیست خوب دقت بکنی اونه که ثابته از صحابه و تابعیه اینم حالا سرش تا اشمان خون روشن بشه این بود که بعد از رسول الله زمان تابعین چون غنا در مدینه رواج پیدا کرد و عارض کلم بعضی از محدثین بزرگ که حتی بخاری ادیش میکنه. کنه اینا میگن حدیث نمیگن می گفتن بیا حدیث رسول گفت من نمیگم مگر اینکه اول چندتا تا مثلا موسیقی خونده بشه، فنان زده بشه چندتا بخونن تا من به صح حدیث نردم دقیق میکنید احتمال بسیار قوی داره که عنوان بقول مرحوم علامه توجه جدی و, و تطبیق این مطلب از زمان صحابه این جری و تفسیر نازل شد. دقت کردیم چی شد؟ یعنی اگر ثابت نشه که حدیث مال رسول الله صحابه و تابعین عمل گفتن آقا و مثلا من من ناس منیه له حدیث شامل این قنا هم میشه کردم آرام. نقطه دقت فرمودید. حالا من این مقدار روایت بخونم. اون ببینید یکیش اینه که لحول حدیث یعنی توجیهاتی که شده. یعنی وجودی که در تفسیر آیا عمله. یک لحول حدیث باطلو این یک توجه این دیگه اصلا رفتی به غنان ازم تقرد من منیشت های لحول حدیث. این یکی این در حقیقت جواب اون کسانی است که استدلال با آیه نکردن که اصلا مراد از لحول حدیثیه بعد ایشون داره که از قطاده این قطاده از تابعینه این در میان اهل سنت رواج پیدا کرد که من ناس من یشتری این یشتری یعنی چی؟ رضا گفتن یشتری یعنی یشتری کتب لحال حدیث یشتری جاریه مقدمیه خوب به قطع پس شرا یعنی خلد و فروش جاریه مقدمیه همون عنوانی که ما هستیم این گفتن نه یشتری یعنی یمیل و علی نه یشتری ببینید ان قول او و من الناس و منیشته لحب الحدیث قال شراؤه استحبابو مراد خلید و فروش نیست حلمید و علیه این هم یه توجیم و نظر این توجیمهاد بگه که مراده از لحب الحدیث یعنی غنا و مراده از لحب الحدیث یعنی انسان غنا رو انجام بده یا سماع بکنه شراؤه استحبابو. و به حسب المرمن از دلاله با زائده یک فیل المرمن از ان انیختار حدیث الباطل علا حدیث الحق و, و فی قولیه یتخیده ها و از قدم یتخیده ها دیروز خوندیم هم یتخیده ها به رفت براعت شده هم یتخیده ها به نس مشهورش نس قال یسته به اوبه ها و یکرده به ها این احتمال داره که قال استهواب گفته مراد این باشه که این حدیث نادر است در حدیث باطل و کلام باطل نه به کدام احتمال داره مراد ایشان این باشه و اخرجه قال باغت نظر عن بله و ان مجاهد قال و سبیل الله ببینید قولی و یتخذوا حزوا قال یتخذ سبیل الله و سبیل حضوا این چون مال قرن اوله هنوز این بحث های تفصیلی به این صورت ما نبود این بگید چقدر لکیقه قال یتخیض آهد و قال سبیل الله یعنی میخواد یا یتخیضه ها رو بگه چون سبیلی ذکر رو یه است چرا؟ چون بعضی بسن یا یتخیضه ها به آیات ذهر میگرده که الان رو خوندم همزن رو خوندم الف لا آیات می کتاب حکیم یتخل ها یعنی یتخل ها آیات الله مجاهد گفته از زمیر به سبیل برمیگرده یتخل ها سبیل الله به انصافن همین درست داره این هم راجدی از ابن عباس نرمی میکنه با قطع نظر از سنت از قال فی قولی هی و من الناس منیشتای رحوال حدیث قال باطل الحدیث و هول غنا و نحوه لیوظل عن سبيل الله قال قراءت القرآن سبيل الله یعنی در مقابل قرآن جای اینکه انسان رو به روایات و قرآن بیاره به بیاره و ذکر الله حالا یا مثلا قراءت قرآن بکنیم یا قراءت قرآن، به جر بکنیم که بدل باشه از سبیل الله نزلتی رجل من قریش اشترا جاریتا مغنیه و بعد بله بعد در اینجا قصه باز دومتر از ابن عباس و قصه نظر ابن حارس رو نرم میکنه که دیگه تکرار نمیخوام بکنه اون جاهایی که تکراره دیگه بله اون جاها تکرار ببینید ان ابی امامه اسانید فراوانی داره این حدیث ابی امامه اینجا در ترمزی آمده در مسند احمد آمده ابن آمده خیلی داره من دیگه نمیخوام بخونم قال الرسول قال لا تبیو قل غینات ولات حشروهم نه غینات که ل مغنیه این اشاره بینی بی که من ناس من یشتری لهره دیز اشتراز منه بی اشاره با؟ خوب نیست از کم در یشتری لهره دیز چند مهنا احتمال هست؟ نکیشم بی اشاره این حذیس ابی امامه این حذیس خیلی سنت داره و تو منابعش کردند نیم خواهم از قلم و سنت عالی قال رسول الله از کلم هم یه موزم که اهل سنت هم در خید و فروش مغنیه رواید دارن قال رسول الله لا طبیع الغینات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خیر فی تجارت فی هن و سبنهن حرام فی مثل هادا نزل از هاده لآیه و منن ناس منیشتر لحب این حالا خیلی لطیفه در این, حد این قسمت آخره این حدیث خوب درقص بکنیم. در یک روز داره وفی حاضا نظرت علیه حاضه العای در یک روز داره وفی حاضا انزل الله علیه در این جه داره وفی مثل حاضا نزلت. خیلی تعدیل لطیفه یعنی پیغمبر در مدینه میخواهم دیگن بابا خون آیه که در مکه بود فی مثل حاضا اون شامل این هم میشه خیلی عتیق از خود پیغمبر در تفاوونی یک متن دیگه هم داره و تصدیق وذالکه قول الله تعالی ما نازل مریشت اله الا کسی سرواز داد من در متون اهل سنت که نگاه کردم این متن رو هم دارن و تصدیق وذالکه قول الله خود پیغمبر هم من تصدیق وذالکه این تکرار دیگه راه نی چرا چون ظاهرا مطلب رو پیدا در مدینه فهم بودن میگن یعنی اون آیه ای که من در مکه در سوره روشن شد اون آیه مکه انتباغ داره بیموره وفیر مثل حاضر نزلت علیه یعنی اون آیه چامل غنا هم میشه باز ان آیه شه خال رسول الله ان الله حرم غینه و بیعه آها و سمنه ها و تعلیمه ها ولی استماعه ها ثم قرره و من یشتری لحور حدی سمه قرره خیلی تحبیر فتیفیه این میخواد یا آیه سین یعنی اون آیه عموم شامل این مورد هم میشه من میخوام بگم که تأجیب آور این قص اصانی در احضی سنت دارن و معضال بینه ها نسبت داده شده که مشهور برای باست خیلی عجیبه الان این حدیث آیشه رو بله ابن مردویه قوی نیست و اهل جل بخاری به لعده المفرد به ابن دنیا به نجایه ابن عبید حاتم اله بله همه ابن عباس منیشتری لحول حدیث قال هول غنا و اشباحو اینو رو اصطلاحان اهل سنان میگن یعنی کلام خود ابن عباسه این اشتهادات خود ابن عباس باز دو مرتبه از ابن عباس شراق المغنیه بعد از مکول و من انس منیشتریله و الهدیس مکول به سال تابع قال قل الجواری اولارباند که دست میزنم. بعد دو مرتبه حاکی و سهه هم او. قل سال ت عبداللہ عبد مسعود انصاریتالار مناس من منیشتریله و الهدیس. قل هو و الله علیه نام خیلی عجیبه. خوب دفت کنیم من هم در سلال بحثا چند مرتبه گفتم اهل سنت این رو قبول دارن که صحن ابن مسعود که این آیه همانه که در حالت میکنه قناه صحن ابن مسعود درست لیکن ان رسول الله چه اشوال دارن یعنی انصحابه و ان تابعی روشن شد و از عجایب اینه که این تقبیریشان نگوزه نمیخون قناه هو برای قناه هست اینجا داره بعدم داره یه جزره‌ای که وقتی به ابن مسئول گفتیم چه بحثی گفت والله غنا والله حسنه. نگفتن. بعض از اکرمه ایشون از طابعیه. سلف اهل لغه الحدیث قالوا هو الغنا. باز از مجاهد و ابن ناش بن یشتره لغه حدیث قالوا هو و کل لغه نه. باز از ابراهیم ابراهیم نخعی که از طبقه خود طابعی نما میشه و ابن من الناس من یه شری لحنالحدیث قال هو جنا و قال مجاهد هو لحنالحدیث باز آن افطار خراسانیشون به اصطلاح جز تابینه افطار خراسانی من من الناس من یه قال عل جنا و الباطل باز آن حسن که برای حسن بشریز است اباده الآیه نظر اصل استازهاش من الناس من یه شری لحنالحدیث فیل دی و از مزامیر میگه اساسش هست میگه اصلا از کنه مفاضش بعد از ابن مسئول ال جناو یوم به نفاق قلب قلب کما یوم به ما از زر هر کردم در وقت رو بود که رو هست در رسول الله صلواتش که ظاهرا مقدار واضح شون صحابه باشه و ذکر ذكر ذکر الله یوم به ایمان قلب کما یوم به ما از زر باز از ابراهیم ابراهیم میگه کان یقولون الغنا يوم بتنفل درسته یعنی از پیغمبر نقل نکرده بود باز دو ابن مسعود اینجا داره قال قال رسول الله الغنا يوم بتنفل فقلت يوم بتنفل ما بعده اینجا ما ليه بله این هم دو مثره گذشت باز بله این روایت ابي امامه رو ما خوندی در این دو کل ما اهل و صوته و به قناه الا بحس الله علیه شیطانه یا از لسان حلا منکبه و خوندیم این اون خوندیم این هم در رویت اهل سنتیم این هم مسئلش از احل باز این روایت احل که اهل سنت دارن که اضامه ای از الله بين این الحق والباطل و الباطل قناب این رو ایشون در اینجا از قاسمه به محمد نقل کرده در روایت شما در روایت ما به امام صادق نسبت داده شده. قاسم محمد جد مادری امام صادقه. قاسم بن محمد بن ایبر محمد درgeschichte میگه ارزیستر این قاسم واسه در حقیقت سیه است و دنبال است بود از فقرهای طرئه مدینه قاسم محمد بن ایبره امام باق دوخری شده گرفته و باق داماد ایشونه. امام باق داماد قاسم محمد ولیضا این مطلب رو من شگفت نگذاریم ما به قاسم محمد یه به قاسم محمد که حرامونهغه قال عمر و ابن الله الحق که در ما هم از همین آمده باز از شعبي اسوائلن به اصلاح راهي کذا قال اللعن المغني المغنیه بعض از خزیله ابن اینم این ما داشت جناؤ و والزنا یعنی این شیرنه اون سیری میشه راهی میشه وسیلی میشه برای زنا این جزو آسانی. چیز عجیب در ما غالب اینها آمده عجیب اینها تماما در احلی داره از اجازه اینه که قال یزید ولید ناقص کار نه. عمیه که حرصدنی اومعیه رو نه این اعلا از بزرگی عدلابنی اومعیه که ناقص سوال عشق دیده که سویچه این امیه، ناقص یدیده نزلیده هشت زنیده که امره نردالعزیده یا منی یا بني و الغنا فه انهو ینق و سلحیاخ و یدیدو فه و یهدم و مروعه و انهو لینو با اناتن خیلی عجیبه عباراتش و یفعل صبح این در زمان در که زمان یدید یه و کارهای زشتی که اینا اینجا میدهدن فردن نبوه و نسا فه این نبوه غنا دعایی نام و یه چون بستمون شد بستمون که من می کنم خیلی نامه است این در اینجا در کتاب نظر می کنه کتر عمرون عبدالعزی واقعا ابرتامی به این نامه کتر عمرون عبدالعزی الان معذب ولده همسه بستمون زاده حالشش میگی کهی استادی که کیوش اداریات کردند نه کنید و چی و این چه راه دنیوش میگردم تا از آن مردزه و آن وجود فعالیت در سیصد سال بعد از وفاتشان مربون سیدرذی قصیدهایی در رساشان داره یا نه عبدالرزی دو تو من اومدی از قبل بکیتوه بر اگه برنوشید برگردم اومدی یه خیلی عجیبه. انتا این قصد اما من از سبه و شرم فهلا با امی او جزای تو یک قصیبه لطیفی در رساله عمر این عبدالعزیز داره حالا این نامه هم عجیب عبدالعزیز هم بارن کارغه عجیب داشته این شمد من عبدالله عمر امیر المؤمنین الى سهر مولا اما بعد فه ادنه که علا علم فه ادنه اخترتو که علا علم منی لتعدیب ولدی و شرفتهم علیه انغیره نگذاشم کسی غیر تو باشه تو باید مسئولش باشی من موالیه و ظلیل خواسته بی حتی از بنی امیه نگفتن چوره انتخاب کردن فخود هم بل جفا هم و هم و اقدامه خب این رو با شاید یه ولی باشه بچه های من با اینها ها تخلیری بکن فه این آدت ها تکس و کسته از ذه بچه ها دنبال خنده و کار این به ان کثرت او تو می زیاد خند دیم رو میکششه. خیلی از ناممه غریب سنس نامه از عیون نامه های سرسان نگاه میکنه در اون زمان ۱سیصد سال پیش به معلمردچچنش. حالا از عجیب بشین ولی یککن اول ما مایت من عذبه اول چیزی که اینا میگه به عنوان ادب به اینها یاد دید. احتمالا احتمالاً مؤلف درجهشون ارقم سابقا یک ادب بود که همین ادبیات بود یک ادب الفعل بود که ما میگیم اخلاق صد اندر مرادی اخلاقی هم بوده خیلی انرژی به نوعی که ملهمه که در شراب و کارهای و این همه جواری اینها خیلی نکته غریبی است ولی یک اول ما یک یشتدون من ادب اول مطلب اینطور میخواهم دیگه اینها یاد بدید چیه بغز الملاقی اول این قنار جروع شو بگید خیلی عجیب ولی یک اون اول ما یعتقدون اون هدبه بغز الملاقی علتی بد بد و حامل اش شیطان آغاز این کار اش شیطانه و آغازتوها سخت و رحمان چه یه عواز غریبی به جایی جایی بگیم مثلا معاذب با مثلا واکی قلیم لعبات شدید و بلان و. کارهای زشت فراغان که بنی اومهی بنی مردم اول یکن اول ما دون من عدلک بغزل الملاحی علتی بد احامل شیطان و آقابتها سخت و رحمان فه انهو بلند انستقاط من حملت الام امن حضور المعاذب حالات قنام و استماع الغنایی اغانی و لحج به و خود انسان عوانی را انجام بده یون به تو نقاض فلقل کما یون به تو ما الوش. و لعمری لتوقعی راده یعنی جد... خودداری از اون که ترک حضور تلی تل اصلا نذار اینها تو مواطن قنا حاضر بشن ای سر الازر زن من از ثبوت عالم فی خلبه و اینکه که در در بشه بیاد و هوه و هوحي يفارقها لا يعتد دم ما سن ات قرنا على شيء ينف او بده او نمیشه اول خوش بده عادت بکنه بعد بشه نکن از اول باید جروش بگیره نده اگر خوش داد بعد بخواد بشه نکنه سخت شه اول این کاری که ادب انجام میده ادب عملی باشه نه اینکه این توی درسا بنی امیه که موسیقی فراوان بوده غنا این بزرگ بشن شام حالا خیلی عجیب تو شام درستان خلافت برای عوضیه این بهترین راش اینه ای سر علا در زن از سبوت علا نفاقی قدر و هوهینه ی فارگوها لا یعتقدو مما سمعت اولنا حلاشه ینتب عوض ول یفتقد کل قلام من هم اگر دو خیعداد بدی شما بذارید، ولی یکتا هست کل لغام از من هم به جز اینی از القرآن. اول با قرآن. یک جز از قرآن رو باید یاد به جز اینی از قرآن، یکس با تو یا یوسف با تو خوب کامل یاد میگیره. اول قرآن. فعلا فرامین. اگر قرآن یاد گرفت، اون اگر نه کی تناول قوسه و کنارته و, و تیراندازی و از سواری و و خرج الی ال این یعنی گل بست برمی‌ذاره ال القرص حافیا فرما صرعتا سبعه ارشاح مثلا هفت تا تیر بزنه ثم صرفت ال قائله در استراحت بکنه قائله همین تیروله آله فلان هم من منه قیلی درست خواب قبل از زن نزن میشه هم داری سم من سر از الالقائله فه این ابن مسعود رضی الله عنک آن یهود یا بنه یقیلو فه این نشیاتی با یعنی در این وقت شرارتین بیگه خواب نیستن بیانه چما بیگه این بخوابی و سلام. و سلام خیلی برای انسان هر جماله کسی در اون زمان اینچی نخواهی داریم. خیلی عجیبه انسان